بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد دوتو بيدي كخلوة في تعرف حديث ساحيبوت فقسمت شبش شركات كيني نقول فالأول المتصل الإسنادي بالنقل عدن ضابط الفؤادي عن مثليه من غير ما يذودي وعله قادحه فتؤذي. ده تشرح لوقيمات اتصال را گفتيم کہ بر ضد اتصال انقطاع یک حدیث باید متصل باشد یعنی منقطع نباید باشه مرسل نباید باشه یعنی تابعین یاد بگیره شعر ما گفته مازن نباید باشه اینا همه منافات با اتصال داره همه منافات با اتصال داره هر چنکی همونطور به مؤلف گفته در بحث مرسل اختلاف بین فقها و محدثین در بحث در بحث مرسل یک صحه در نزد محدثین اینه که یک حدیث به هر علتی که فسادش باشه حتی اگر تابعی باشه کبار تابین هم باشه قابل قبول نیست تا یک مدرک دیگه بیاد اون تایید بکنه و تخییریتش بکنه میمون اتقان که تعریفش شد اتقان زبطی اکرابی که دو دونو, دونو یکی زبط کتابت و دومی هم زبط صدر یا سینه و حز و بحث عدالت هم شد عدالت اون ملکهی که سبب میشه اکرابی از اسباب اسبابی که شخصیت شد شخصیت اسلامی شد دیوتدیون اسلامی شد زیر پا میگذاره دوری بکنه و همچنین از گناه ها و اصبال فس گناه های کبیره و اصبال و گناه های سهینه میونه بحث که اهل حدیث و یا علماء حدیث بر تعریف حدیث صحیح افزوده و دوم کنم دو شرطه یکی شاد نباشه دومی هم حلت نداشته باشه حتی که بحث شدود فقه هم به ششاره این به این صورت هم نیست که مطلقا در نظر علماء حدیث فقط بحث شاد باشه الاونچي ديگه ما داريم الان در شرح مقدمه مفضه يا مقدمه مفرد ميگه اهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلل وفيه نظر على مقدمه نظر الفقهاء فان كثيرا من العلل يابونها ميگه اهل حديث دو تا شرط اضافه كردن بر حديث صحيح و اونا شاذ نباشه و باشه اشکالی درش هست در نظر فقه ها چون خیلی از فقه ها خیلی از الان را قبول ندارن خیلی از الان را قبول نمی حالا این بحثش هم بازه انشاءالله در بحث معلت و عیب الان به معنی دیگرش عیب حالا این عیب ها متفاوته عیب ها متفاوته عیب ها برمیگرده ملاقات دوتا راوی با هم یا ضبط بعضی دیگر که برتر از بعضی دیگر بوده این یک کتاب این حظ روکنه چیزی که دیگری حفظ نکرده وله از مسائل زی زیر با یا زیر موضوع اللت میاد که خیلی مثلله ریزه یکی از ریز سر این بحث علت خیلی مسئله ریززه بخاطر همین کتاب هایی در ض نبحه علل نوشته شده که بهترین کتاب بهترین کتابی که در این ظ نوشته شده کتابمان دا خنی علیه لداره خسنی که تقریبا در نوم جلده بهترین کتابی که در این جمع نوشته شده که نشانه یه حفظ این امامه حفظ بالاش که میاد در این کتاب احادیت را کنا رو هم میگذاره سندهاشون و مطناشون و مثلا این راوی در اینجا جد و این اشتباه و این توهم شده در اینجا این اصنات این, این راویش این طور شده و این چنین نباید بشه روایت را کنال هم میگذاره بعد ترجیح میده که کدام یکی از این روایت ها صحیحه و یا بهتر از دیگری خب این بحث علت نمیخوام بحث علت الان باز بکنه چون در داشتای خودش میاد شازم همینطور یک موضوع مستقلی در ضمن حدیث در ضمن مصطلح حدیث که خواهد اومد لیکن الابطور مختصر بحث شاز اینه که یک راوی ترقه بیاد مخالفت بکنه با کسی سف... که سختتر از خودشه و یا با مجموعی سختتر بیاد مخالفت رو حالا به عنوان مثال اون چیزی که در نزد علماء اختلاف درش شاید طالبعال این مسئله روز ذهنش باشه که در بحث صفت سلام بهش اشاره میشه حالا اختلافی که حسن علامه البالی و بینشت مقبل واضعی در حدیث تحریف سبابه حالا این مثالی که زده میشه یک از جمله مثال هایی هست در وقت شاز ما در رمایت جمهور محدثی چیلین داریم در بحث در بحث رفع سبابه در نمان در تشه هست چیلین داریم که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم انگشتشون را سبابش رو به قبل میکردن و می نگریستن به اون انگشت و دعا میکردن و یه در به در بعض داره باید اومده حالا شااهد اینجای حتها باید تحری نظر شخمل چون اینجا تحریق اومده و در اونجا اشاره اومده تحریب زده اشارت در نتیجه تحریق شده تحری شازده اشر سوافان هیچ وقت با تحرییک دور ت نمیاد. حالا اگر ما تحریک در نظر بگیریم زیر بالا یا چپ و راست در نظر بگیریم. لیکن النظر علامه البانی میگه که تحریک در اینجا منافات با اشاره به قبله و اشاره نداره. چرا؟ میگه اگر رابی میگفت یخفض و یرفع و زیر و بالاش میبر بله منافات داشت. میگه میگه حرکت و حرکت خفیف حرکت خیلی خفیف منافات با اشاره به قبله نداره. در نتیجه این میشه زیاد استفاده، حالا در وقت زیاد استفاده اومد. پس از نظر بعض از علما این حدیث با زیادی تحریک شاذ، نظر دیگر علما زیاد و قابل قبول. حالا یک مثال دیگه واظع برداریم. حدیثی که در صحیح مسلم داریم. حتى ينفق حتى لا تدري يمينه ما انفق شماله. قلب، درست یاد گرفتید در وقت قلب میاد در بحث شاذ میاد تا, تا تا جایی که دست راست ندونه دست چپ چی در راه خلا دلن والا دست چپ میره دست راست میده دست راست پس این شاذه این شاذه چرا مخالفی در متن روایت با چی با روایات دیگر ثقات با روایات دیگر ثقات صحیحه اینکه دست چپ ندونه دست راست چی بده نه اینکه دست راست ندونه دست چپشی داده حالا این خلاصه بحث شجوز و بحث علیت ولی هرچنکه بحث شجوز در نظر فقه به بشیوه دیگری میشه مثلا ما در اصول فقه چلین داریم قول المثبت مقدم على قول المنفی بحث شجوز و بچه بحث, بحث زیاده اتفاق هرد و صباهم فقه ها نگاه به این نمی کنند که کدوم یکی از اثنات، کدوم یک از اثنات یا کدوم یکی از روایت ها قوی تره فقه ها به مطلق روایت نگاه میکنن. می کنند می مثلا به فرز دتا روایت یکی از رابیان مثلا در روایت می یک یکی لفظی را زیاده و بیشتر از رابی دیگر روایت می خب این دو تا حالت داره وقتی که یک راوی بیاد با مجموعی از ثقات مخالفت بکنه یا یک زیادی بره که دیگران نیبردن یا اینکه این که از لحاظ ثقه ای امامه و تفرضش قابل قبوله که میشه زیاده ثقه ای یا اینکه که تفرضش به احتمال بذیر نیست اینها ها ثقات این از لحاظ ثقه درجهش با این سره چطوره که اینها ها ندونستن این دو نیسته پس در رضا مالمای حدیث چیه؟ قابل قبول نیست غیر ممکنه که اینها مجموع استقال پنشش نفر حافظ امام متقن جمع بشن از یک شهر روایت بکنن بیکن بدون زیادی که اون راوی که متقن نیست روایت بکنن از نظر, از نظر فقه ها هر زیادی قابل قبول آلا راویی زیاد باشه سقه باشه قعودش چیه؟ قول مثبت کسی که اثبات بکنه چیزی قولش مقدم رکتی که نسرو کنه چون این زیادی اوورده با اثبات اوورده در نتیجه قولش مقدم این مسئله خیلی مهمه که در بحت شزوز و بحت زیادی زیاده اثقه اختلاف هست بین فوقها و بین محدشیم خب خلاطشو چینین میگه امام امام ذهبي میگه بالمجمع على صفته اذا میگه اون چيزي که پس اجماع شده در حديث صحیحه متصل باشه دوما صار السال من الشذوذ والعله الثالم من الشذوذ والعله شاذ نباشه توميشا سهميشا عله نداشته دو باشه وان يكون رواياته ذوي ضبط و عدالت و عدم و راویانش ضبط داشته باشن و عدالت و تدلیف نکنن شرط گذاشته بزرشدن اینجا لیکن لازمه ی عدالت ما میگیم لازم نیست که این شرط شیشون اضافه بکنم شون لازمه ی عدالت یک راوی تدلیف نکنه حالا تدلیف چی؟ در زمین بحث تدلیف و قهد اومدنشان ما در بحث فرق بین صحیح بخاری و صحیح مسلم در بحث احادیث عن اینکه امام ابن صلاح میرون انشاءالله ما خواهیم گفت لینه اینکه شاید در این جلسه فقط نکنیم در درسی آینده. پس اینه این کسیم روایت متصل باشه چهازو اللفت نداشته باشه و ضبط و اتخان داشته باشه. خب الان موضوع عوض میشه میریم بحث اصحب الاسانید. اصحل اسانت موضوع بعدی در ضمن احادیث صحیح صحیح ترین اساتید ها میگه فاعلا مراتب مالک عن نافع عن ابن بالاترین روایات که در صحت اون شده که بین اساتید سند طلایی میگن مالک از عزب. از نافع از ابن شخص اگر این روایات بکنم بهشون میگن چی سند طلایی و یا بعض علماء عبدودن احمد از شافعی از مالک از نافع از ابن عامد احمد از شافعی از مالک از نافع از ابن عامد الان بالکن در قیه این اثناس چینیه بود احمد از شافعی از مالك از ابو از ابو اب ابو یوسف از ابو حنیفه از ابن مسعود از ابن مسعود از ابن مسعود باشه ابن عمر نباشه خب حالا این سنت میشه تلاعی باشه یا نه بله نغض روی ابو حنیفه است نغض روی ابو حنیفه اصح السنن چون ابو حنیفه در علم حدیث در مصادر حدیث یا در علم رجال ضعیف است به خاطر ضعفش حتی که امام است لزروس لازمه است صح السنن که اینکه راوی غیر از اینکه عدالت داشته باشه و ذبط داشته باشه امام هم باید باشه لیکن ابو حنیفه امام هست ولی ذبط و عدالت نداره به خاطر همین این اثناس که گفته شد اصح السنن نیست خب الان میاد مؤلف انواع از حولتانید رو میگه میگه از جملش منصور از ابراهیم از علقمه از عبدالله یعنی عبدالله بنومد یا زهری از سالم از فدرش از عبدالله بن مریم یا ابو زمنات از اعراج از ابو بعد از اون معمر از همام از بعد از اون ابن ابی عروبه او عروبه ان خطاد عن انت يا ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله ثم بعده في المرتبة ليش وزهير عن أبي الزبير عن جابر رجمي خطيقه روايته خاهيم قلت إن شاء الله أو السماك عن عكر عن ابن عباس. او أو بكر عياش أبو بكر ابن عياش عن أبي حق عن البراء او العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ونحو ذلك من أفراد البخاري ومسلم رأي جاء خاتمی افتلا بردیم از سحول اثانید که در مقدمی ابن سلاح مباحث بیشتر و مباحث خیلی فراتر از این چیزی که زهبی در اینجا کرده اومده حالا از سحول اثانید چیه و به چه درز ما می کنه وقتی که ما نگاه به اثانید یک روایت می کنیم مثلا در یک منطقه ماعیه یا در ماعیه نی یا در یک شیوه ماعیه نی که بعضی از اون راویان قوی‌ترن از راویان دیگه وقتی که از لحاظ یک راوی روایتی قوی‌تر از دیگر روایت باشه اون روایت بهش میگن چی اصح یا قویترین اسناد ها خب حالا این چند تا اعتبار داره اصح ولاتن اعتبار ها مختلف مثلا الان دیرید بعضی از روایت ها به اعتبار یک منطقه معیونی از روایت رو رو رو های مثلا اهل مدینه روایت مالک از نافر از نعمر بارتری باید خرار دارد این به اعتبار یک منطقه بعضی از روایت های نه به اعتبار یک شیخ معینی ما میبینیم مثلا به اعتبار ابو هرر علا ابن عبدالرحمن از پدرش از ابو هره رفت و همشونی داشتیم معمر از همم از ابو هره رفت. چند تا مثال معلف میاره از ابو هره رفت خب. یا ابو زناد از عرج از ابو هره رفت. خب چه خرقی با هم دارم خرصتاشون از ابو هره این به اعتبار شیخه به اعتبار شیخ به اعتبار شیخ معینی فلان اسناد قوی تر از دیگر اسناد این اسناد هست بعت... مثلا به اعتبار به اعتبار مثلا حمام روایت های معمد قوی ترین اسناد و یا روایت های عراجه دبیورری قوی ترین اون ابو زناد از کی از عراچ پس میشه چی به اعتبار شیخ یعنی قوی ترین اسناد فلان اسناد چه کمکی به ما میکنه وقتی که ما قوی ترین اسناد ها رو بدونیم چیزی که الان در علم حدیث بیان میشه در بحث قوی ترین اسناد ها و یا اصلح الاسناد در اینجاست که اگر ما دو تا روایت داشته باشیم دو تا روایت با هم اختلاف داشته باشن ها بحث شذوذ و بحث زیاد الرساله دو تا با هم اختلاف داشته باشن چه موقع یکی بر دیگری برتر میشه چه موقع ما اون زیادی رو قبول می و چه موقع یکی از اونها شاز میشه شه به درد ما می این روایت اگر قوی تر باشه پس اون زیبتر رد میشه اگر زیادی بیاری که مخالفت داشته باشه با اون کسی خوی تر حالا این از جمله خواهی ریست در بحث اصحب الاسانیت ذکر می شه پس اصحب الاسانیت به اعتبار به اعتبار هر شیخی فرق می یک شیخی رو اصطلاحاً دیش به اعتبار یک منطقه معینی میدونه و یا به اعتبار یک قبیله معینی حالا میام موضوع عوض میکنیم میریم به بحث بعدی در ضمن حدیث صحیح را حقيقه مؤلف نهای بوده چون انا در اصلش اونجا فقط بششاره میکنیم کدام یک از ائمه کدام یک از ائمه پیش قدم شدن در جمع احادیت صحیح خودم یک از آیمه پیش قدم شدن در جمع احادیت صحیح از نظر علامه مغلطای اولین کتی که شروع به جمع کردن احادیت صحیح داشتن کی بوده؟ امام مالک ولی جمهور محادیت چی میگن؟ امام بخاری جمهور محادثی برای اینه که اولین کسی که احادی صحی را جمع باری کرده کی بوده؟ امام بخاری امام عراقی میاد رد میده بر علام مغلطال میگه که اولین کتابی که در ضمن احادی صحیح نوشته شده کتاب صحیح بخاری چون در زمن موته مالک احادیت بلاغی یا مرسل یا معزل و منقطعا در اشت هست. ولی احادیت منقطع یا مرسل و دیگر روایت هایی که ضعیف در نظر محددین در صحیح بخاری نیست. علام مغلطای میاد رد میده بر علام معراقی. میگه، شمایی که میگید در مات مالک احادیث منقتر یا مرسر یا بلاغات هست، خب ما 1341 روایت معلق در چی داریم؟ در سهی بخاری، 1341 حدیث. چه کتابی تاریز من تحلیقات سهی بخاری نمیشه شد؟ در سهی بخاری، تقلیق از تعلیق، تقلیق از تعلیق، تعلیق سالنام ابن حجر، پنجل به خلی کتاب خوبی که میاد ابن حجر تمامی روایات را کنار هم میگذاره تا بیاد برای ما مشفق بخنه که آیا این روایت ها متسل هستن یا نه؟ ابن حجر میاد پاسخ میده برد علامه مغلطان میگه اولا امام بخاری اگر معلقات را آورده معلق را چیه نیچه معلق هی که حدیث از ابتدای اثناد از جهت کسی که تواید می کنه اثنادشو نگه من بگم ابو هره گفته که رسول الله چنین پر بوده این معلقه سند داره مشخصی من از که شنیدم هر وقت من از جهت خودم اصنادم و نگم میشه معلق حالا چه به صحابه نسبت بدم چه یک شیدی که اونو دیدم اگر نشمیده باشم با اون ملاقات نکرده باشم شکری میشه, میشه معلق امام امن حجر چیلی میگه میگه امام بخاری اگر معلقات را آورده در کتاب صحیحش نیورده که بهش استناد رو کنه را به علتهای حضر کرده یا وقتش نداشت در طول سفر بوده یا تکرار بوده در جاهای های دیگر اومده و یا در شرح بعضی از الفاظ حدیث رو ورده نیورده که بهش استدلال بکنه اما امام مالک رحمه الله وقتی حدیثی که بلاغی هست یا مرسل هست یا منقطه هست در کتاب ما میاره ازش حکم استنباد میکنه استدلال میکنه به اون روایت حجت در مذهب مالک ولی در مذهب بخاری نه اون معلقات ازش استدلال نمیکنه ازش استفاده نمیکنه مگر الان گفتیم در شرحه قریب در شرحه بعضی لغت ها یا از مفتش نه این که حکم ازش استنباد بکنه حالا بعد میاد علام امن حجر جنبندی میکنه بین این دوتا قول که بقاری مقدمه یا محتر مالک میگه علام مالک رحمه الله امام مالک عزباب بررسی و انتخاب راویان بررسیmile و انتخاب از اولین کسی هست که کتاب صحیح ایران نوشته انتخاب رابیان انتخاب اسناد یا بررسی اسناد و انتخاب رابیان اولین کسی هست که یک کتاب را در این زمін نوشه شده بررسی کرده احادیث و احادیث بررسی شده احادیث معیین را انتخاب کرده این اولین کاری هست که انجام شده توسط وسط مماله لیکن از باب تطبیق شرط حدیث صحیح از باب تطبیق تطبیق شرط حدیث صحیح در رضا محدثی اولین کتابی که نوشته شده کتاب صحیح بخاری شروطی که گفتیم پنیتا شرطی که علمای حدیث برش اجماع در اولین کتابی که در این, این زم نوشه شده کتاب صحیح بخاریس خب الان این مسئله درشو میبنید پس اولین کتاب صحیحی که نوشه شده کتابی چی بود؟ کتاب صحیح بخاریس میمونه بین صحیح بخاری و صحیح مسلم کدام یک از این دوتا کتاب برتر هست؟ صحیح بخاری برتره یا صحیح مسلم؟ از نظر جمهور محدثین صحیح بخاری و بر... برتره از صحیح مسلم؟ از نظر ابن حرز و قرطوبی صحیح مسلم برتر است صحیح بخاری پس جمهور مخدسی صحیح بخاری را برسر بیدارن بر صحیح مسلم و ابن حرز و قرطوبی صحیح مسلم را مقدم میدونن الاحث با میگه ابن اطلاح و ابن کسی چنین نقل میکنند که شرط بخاری از شرط مسلم از شرط مسلم در احادیث انعنه قویفه ده جایی که ترلیست باشه خوصا در رابیانی که مدلت هست روایتی که با لفظ عن روایت بشه مثلا ولی دونوست نومده میشه که بیاد بگه حدت عن, عن لوزاعی عن فلان عن فلان لفظ عن رابیانه لفظ عن برخلاف حدتنا روایان همه سته هستن لیکن این لفظ مهم این لفظی که دو پهلوس احتمال اتصال داره و نظریه من میگم فلان شخص از فلان شخص نقل شده که چنین گفته یا فلان شخص چنینی گفته نگم که من دیدم یا من شنیدم بلاغه عن بلاغه از این احتمال داره شخصی من خودم شنیده باشم یک واسطه‌ای باشه خب در احادیث عنانه شرط شرط بخاری خوی تر از شاهیم سر امام مسلم امام بخاری میگه در احادیث عنعنه باید دو تا راوی با هم ملاقات داشته باشه حالا اینم در ایک،, ناکن در ایک فرانتز رو دارید در صورتی که راوی تدلیف تسبیه نداشته باشه مثل ولی دون رسلیم و بقی ابن ولید حالا در بعض تدلیف خواهر امام ولی در نزد امام مسلم رحمه الله معاصرت کافیه. یعنی دو تا راوی همعط باشن کافیه. امام بخاری میگه نه باید مناقضشون ثابت باشه. و شرطه کی خبی کرده؟ شرطه بخاری. که غیر از این باشن باید ملاقات هم بکنه باید ثابت باشه. خب، این بچه اول برتری بخاری بر مسلم وجه دوم ما وقتی که به روایات بخاری و مسلم نگاه میکنیم چه عدد راویانی که انتقاد شدن در نزد بخاری و در نزد مسلم میبینیم منتقدین اونهایی که انتقاد شدن در نزد امام بخاری خیلی کمترن از از اونهایی که در نزد امام مسلم نقد شدن از چار و بیس نفر مثلا از راوی مثلا میبینیم از راویان بخاری میبینیم 80 نفر نقص شدن لیکن مثلا امام مسلم میبینیم از 60 نفر 180 نفر نقص شدن تعدادشون خیلی بیشترین تعدادشون خیلی بیشترین حساب بکنید از 602 نفر نمیم 602 نفر 100 خوردی 180 نفر منقص شدن لیکن امام بخاری از 420 نفر راویانی که ازشون نقص کرده، 80 نفر نقص شدن. حالا این تقاط ها مختلف حالا ببینیم برتری در کجاست؟ برتری بخاری برموش نیم. امام بخاری این اشخاصی که روش نقص شدند این اشخاصی که نقص شدند از شویخشن، از کشانی که با آنها نشسته و ملاقاتش کرده. در طبقه شیوخش هم بیشتر این رابیانی که نقص شدن لیکن در نزد امام مسلم رحمه الله از طبقه بالاتر از شیوخش هم کسانی که اونها رو ندیده با هاشون ننشسته الان کدوم یک قبیتره من اون شخص بشناسمش ازش نقد بکنم و حادث رو انتخاب بکنم از حادث درستش و یا کسانی که اونها را ندیدم و احادث اون خود را برفی نکردم شکل درش نیست من از اون راویانی که باش نشستم انتخاب بکن روایت معینی من قوی ترم از اون کسی که از اون کسی که از کسانی نقضی میکنه که با انها ننشسته حالا بوجود دیگری هم هست تعداد احادثی که در نظر بخاری نقض شده خیلی کم تر از احادثی که در نظر مسلم نقض شده حالا وجه برتری مسلم چی میتونه باشه؟ ابن حجر میاد جنبندی میکنه و میگه که هرچنگ که از لحاظ قوت اسناد امام بخاری برتری لیکن صحیح مسلم هم برتری داره یک وجوه برتری داره بر صحیح بخاری از جمعه اینه که امام مسلم وقتی که یک روایاتی را میاد نقمی کنه روایات رو کامل با تمامی الفاظش در یک جا میاره هیچ وقت به معنا روایت نمی کنه روایت رو کامل میاره میگن امام بخاری چه کار میکنه پراکنده یه جا یه قسمت میاره یک قسمت دیگه ما مثلا یک حدیثی در بحث وضوء هست در بحث نماز هست در بحث سهارت هم هست در بحث طهارت قسمت اولش میاره در بحث نمیدونم وص قسمت دومش میاره در بحث نماز و قسمت سومش میاد میاد تیک تیکش میکنه لیکن امام مسلم نه همه رو در یک جا نقل میکنه از این لحاظ صحیح مسلم برتره و همین امام امام مسلم رحمه الله در نقل الفاظ ادا خیلی دقیقه مثلا میاره حدثنی فلان قال اخبرني فلان ها واخبرني فلان وقال حدثنا فلان خله مهمه هذا يعني شيء هذا تحويل اسم هذا في المدارس الاسلاميه اسناد اول شو اسناد ديجات ميجي فلان شخص بهمن گفت بالادر شيء حدثنا گفت كي اخبرني فلان تحويل الاسم ميجي شخص فلاني كسي ديجري دي دي. بهمن گفت که فلان شخص گفته چی؟ حدت انا در روایت اولی اصناد اول گفت حدت انا اینجا گفت اکبره این خیلی دقیقه ما موسیقه دو تا اصنادشو میاره میگه در اینجا این راوی گفته با لفظ احض اخبرانا در اینجا گفته با لفظ در روایت شخص دیگری خیلی دقیقه لیکن ما بخاری چیز این چیزی در به این الفاظ انا ادا نداره نه این جیال که هر طوری دلش خواست و هر چیز رو خواست با هر لفتی که خواست بیاد یک حدیث رو عدا بکنه نه امام مسلم رواهتها رو کنار هم میگذاره میاد نادومت رو کنار هم میذاره و با, با هم بررسیشون میکنه و اسمتاشون میگه بخاطر همین علما میگن تعداد احادیث بخار بخاری بدون تکرار با تکرارش حفظارو دویستخوردی حیسه دویست و شصت و, و دو تا بعضی ااپرا تقیم فرق میکنه بعض هفت هزار و دویست و ش تا همزار هفت هزار و شش و شصت تا تقییم ماش رو میکنه بر حث نسه هایی که اومده بعضی جاها معلقات حساب شده بعضی ها معلقات, معلقات حساب نشده ولی تعداد احادیث مسلم با تکرار دوازده هزار تاست بهخاطر همین ثند ها گفته شد در حث ممسن بدون تکار چهار هزار و احادیث بخاری بوده میتکرات دو هزار و شسد و دوتا دو هزار و شسد و دوتا این غیر است معلقاتشا غیر است معلقاتی گفتی هزار یک تا حدیثا این خلاصه بحت تعداد احادیثا میمونه ایک مسئله دیگری ما در <موزر> بحث کتاب ها می خونیم شما شاید ملاحظه کرده باشید کتابای امروزی که باعث مؤلفی می نویسن اخرجه اصحاب الصحه او اصحاب مثلا کتب سته را سنن سنن اربعه یا سنن اربعه میگن خصوصا میگن که صحه و سته اخرجه اصحاب الصحه جدا او الا آیا کتاب سنن نسائی، سنن ترمیزی و ابو داود و ابن ماجد صحیح هم؟ سؤالی که اینجا مطرح میشه سؤال دیگری که مطرح میشه اینه که امام نسائی از لحاظ جرح و تعدیل متشدده ده. خیلی از راویان بخاری رو انتقادش می کرده آیا قوی تر بودن نسائی بر بخاری از لحاظ جرف و تعدید لدیدید اینه که کتاب سننش قوی تر از صحیح بخارید و کتابش صحیحه این دوتا سوال مطرح کردید در شما ماشی میشه گفت صحیح نسائی؟ چرا؟ پس ما میبینیم سنن نسائی صحیح نیست چون بعد از علما که تخریجش کردن احادیث ضعیف و لذره بردن از جمله البانی که اومده ضعیف و صحیح در آورده خب این یه چیزی که ما لمس کردیم لمس بعد از لحاظ علمی از لحاظ علمی چرا سنن نسائی صحیحه نسائی نیست اولا به خاطر اینکه خود امام نسائی شرطش جمع آوری احادیت صحیح در این کتابش نبوده شرط نگذاشته که احادیت صحیح رو جمع آوری بکنه ولی بخاری شرط گذاشته که احادیت مسلم و متصل و صحیح را نقوم کنه دو بومن امام بخاری و مسلم هم همشینی اگر از کسانی نقوم بکنن اون کتا شنافت شدن آیا امام نزایی هم همینطور؟ از فقط شناخته شده ایدان نقل میکنه یا نه از مجهولین هم روایت میکنه از مجهولین کسانی که شناخته شده نیستن جرح آدرباره اونها نمیدونه میاد نقل میکنه ولی اون بخاری چنین نیست بس کتاب ست سنن سنن اربعه همچین سنن نسائی جز کتاب های صحیح نیستن به علت عدم شرط صحیح در کتابشون عنی عدم اعتراع شرط گذاشتن شرت صحیح در کتابشون در کتابشون و دو من به خاطر نقلشون از احادیثی که به درجه صحت نرسیده چ نگاهکنیم کلنا کلن مباحث ح صحی ای را کتابای صحی کتابایی سن و تیکه تیکه هم جور م مختلفتر عبورش عبور میکنیم تا بریم بحث خرید هر عالمهای دیگر هستن مثل ابن هزهیم و مثل ابن覇بان کتاب های را نوشتن این دو تا کتاب آیا در رتبه های صحیح... کتاب های صحیح سحیح بخاری و مسلم هستن؟ آیا صحیح ابن, خزیمی... ابن حبدان در راسته ی صحیح بخاری و مسلم هستند هستن؟ اسم کتابشن صحیح ابن覇بان فس احضر ابن حبدان نیستن؟ چرا؟ شرط بخاری که نه شرط علمای حدیث چون بخاری خودش از خودش شرط نیست که شرطی که شرطی که رو کتابش گذاشته شرط علمای محدثین و علمای حدیث است آیا ابن حفمان و ابن خوزیمی اون شرط را مراعاتش کردن یا نه خیر اختلاف در نظر امام ابن خوزیمی و ابن حفمان در عدالت یک راوی آیا یک راوی عادل در صورتی که جرحی درش نباشه یا این که علمان را بشناختن به عدالت یعنی یک کسی ما در بارش علمان در بارش صحبت نکنن نگرد که شخص عادله و خوبه جعید به خطر بارش را داری علمان نشناختنش آیا این شخص عادله میشه بهش گفت عادل یک شخصی مثلا بالفرد در بندر اباس هست و شخصی اسم فلان پسید دعبارشو بدی یاد نکرده فلان شخص من میگم محمد فیلان کس. عادل مشخص؟ عدم وجود نقضی درش. جرحی درش عادله؟ نه. در نظر محادثی که را عادل کسی که علماء او را بشناسن و جرحش نکنن. بشناسنش. تعدیلش بکنه سرده هست. صدوقه. رفبش مشخص بکنه اما در نظر امن خودینه در نظر ابن حبان نه خود ابن حبان در مقدمه صحیحش میگه میگی من در کتابم اشخاصی که رابیان عدلی که در بارش جرحی ندونستم امرده ازشون نقل کردن بس این شرطش برخناف شرط محدثین قبول یک روایت یک روایت یک روایی که در بارش جرحی نشده یعنی روایت های مجمولی کسی که جرح نشده و تعدیل هم نشده یه نیچی مجهوله شده نیست پس ابن حبان و ابن خوزیم به زلیل روا... روایت کردن از مجهولین و کتانی که به عدالت شناخته نشدند کتابشون از رتبه صحیح پایین تره احادث زیر هم درش گات میشه تمامی احادثش صحیح نیست یا احادث صحیحشون صحیح نیستن بخلطنا همي زيان كثير امام ابن حبان امام النوف و زيمن در تعديل متساهلا در تعديل متساهلا مجهور و عادل مدنان متساهلا بل يا ابن حبان در جرح شديدة در جرح شديدة لأشان كدر تعديل ابن حبان, حبان دوتا كتاب دارة يه كتابة مجروحين يه كتابة ثقائي کتاب ثقات را رویان ثقات رش بینه و کتاب مجروحین را رویان مجروح و در جرح رویان شدید خود ابن حبان معروفه حالا در بحث الفات جرح تعریف این مسئله رو به سربتر ترشت را بیاق خایم کرده این شد بحث صحیح ابن حبان و صحیح ابن حوزیمه حالا کتاب هایی که را نوشته شده پیرامون احادیث بیاده Everything is necessary, all Maryland are not associated. There are territory two that is true. There are one that is talkable name for him who is my son I and god avantiy loved him, who was informed himself, There are those who were sponsored such as cousin Ahmed, from the付cictor from تحتیب صحابه، اصحاب برد، نمی دونم، برطرین صحابه، برطرین صحابه، مسند ابو گرره، مسند ابو برد، مسند فیلان، میاز برحث به برطرین اصحاب مرتبش رو می مثل مسند احمد. بعض از کتاب ها معاجمه، معاجم تبرانی، سغیر و سبیر و ارسل، برحث به شیوخه. تبرانی اومده از شیخ فلانی، هرچی احادیس شنیده رو در یک جان نفت کرده. این بطور خلاف کتاب هایی که حد نمیشه شده بعضی ها مسند، بعضی ها سنند، بعضی ها و بعضی ها هم جامع که کتاب جامع المسانید اومده کتاب این احادیث را در یک جا جمع بندی بکنه مثل کتاب جامع ابن کسیر یک مشهوره که میگه که امام صحاتی ازش نقمی میکنه میگه که ابن کسیر میگه مازل تو اکتوب و باللیل و استراج و یونه و نفس بگه می نوشتم کتاب همین جامعه و اون فانس اون چرایی گذاشته بود چشمک میزد میگه تا این که رسیدم به مصند عبی برره و کتابی هم آسونه میگه حتی فقط تو بازاری میگه تا این که چشمام از دست دادن حمد نگاه بکنید یعنی اصلا تعجب می کنه که شب هنگام بلند می ارزش وقت بلند میشن با اون چراغ با اون نور کم حالا ما چقدر منت بر ماست ما چی کار کردیم چشمش رو در راه ترسیب کتاب جنبندی کتاب در باب در بوده و سندن علم صحیح به ما چقدر زحمت کشیدن چه کار کردن اینکه این که چشمش از دست داده در آخر عمرش میگه و هو عمل و یه سید میگه عمل آسون همه هست خودم از خدا میخوام کسی مسخرش مسخر،, مسخر بکنه که بیاد این کتاب رو ادامهش بده و کاملش بکنه این علماء اهلسونت زحمتشون هممتشون هممت در جوی خودش زحمت در روی خودش دونستن ارزش وقت در جای خودش ارزش وقت ما میدونیم علمایی که درای خونه‌شون عوض کردن به خاطر اینکه 10 ثانیه از وقتشون در روز تلف نشه 20 ثانیه از وقتشون در روز تلف بشه علما بودن در خونه‌ش عوض میکنه به خاطر اینکه وقتش در روز 10 ثانیه نره در هفته یک دقیقه نره و در ماه چهار دقیقه نره و در سال یک ساعت نره علما بودن که یک ساعت در سید یک سال واسه همون یک سانیه و دو سانیه واسه مهم بوده ما اگه در نظر میگهیم یک روز هزار و چهار خوردی دقیقه وقت داریم هزار و چهار سده شد و حساب بگویم 24 ساعت هر ساعتی شد دقیقه این 24 زده شد دقیقه بکن چقدر میشه؟ 1400 دقیقه از این 1400 دقیقه 400 تا 500 دقیقهش تو خوابی 8 ساعتش نزدیگ 500 دقیقهش تو خوابی دیگه چقدر مونی؟ 900 دقیقه این 900 دقیقه چکار میکنیم؟ 100 دقیقهش نماز یک ساعتمی مونن نماز مجمع نمازهی که نمیتو مثل میمونیم دیگه مونی؟ 800 دیگه 800 دقیقه دیگه واقعی خواهد این دقیقه ها کجا کجاست و چیکار کردیم بون همین ها خود چیز هایی هست که در روز قیامت ازش سوال کنن عن عمره فی معنا عمره چه کار کردید وقتش چه کار وقتش چه چکار، کارش کردی و دست رایت سر داشتید موری هست که ما در روز قیامت ازش سوال بشیم این نعمتای که خداوند بر کردن ما گذاشته وسایلی که فراهم گذاشته از وسائل کنک کننده گرفته و وسائل نوردهنده گرفته از همه این چیزها این همه منت ها هست که خدا من کذاشته با گردن ما قدرش رو بدونیم علماء بقاطر این که علم را به ما برسونن به خاطر اینکه حفظ علم را بر ما بکنن فهم علم را بر ما آسوم بکنن چشمشون رو در گروه خدمت به علم به احادیث نبری گذاشتن عمر خودشون قدرت سنه در ولستان سنه نه باشی نه میتونه قربانا بسنه نه باشی یعنی که گمراهی كله محدثه بدعه و كله بدعه ضلاله و كله ضلاله دیگه میشه جزء اشخاص مفسده سنت که بدون شد به خاطر دیگه خود به خود گمراهی شد را چقدر این عالمای حدیث بر غزنه ما منندن از ابن کسیر گرفته ابن حجر گرفته مزی گرفته گیر را را برامون رسوندن در جفت و تعدیب گرفته در کتاب سقا کتاب مجکفی همه نوشتن برای چیز خدا من مسخرشون کرده ابن کسیر خود خدا ساختش سختش بخاطر این که علم سخیر را بما برسونه بخاطر همین تراموش نمی این جمله از شیخمون محدث مدینه علامه عبدال محسن عربان که شیخ علبانی از اسیاد میکنه به مخدس مدینه میگه که ما در کرن حاضر به دو شخص مدیونیم به ابن حجر در کرن نهوم در علم حدیث نبوی مدیونی و دو به آلبایی در قرن پونزه هم در کرن نهوم علامه ابن حجر و در کرن پونزه علامه البانی. ما به این دو شخص مدیونیم اگر این دو شخص نبودن دیگه خدا بیدنه چه برای تنین کتاب ها در میبینیم کتاب های حدیث، فتف الباری که الان میبینیم چقدر از غوادها جمع باری کرده که همین فتف الباری سبب شده فتوحات بشه فتف الباری سبب شده فتوحات باری بشه سبب شده تویوتی بیاد فنان بیاد کتاب ها تحقیق بشه فنان بشه بررتی بشه احادی در درست مردم بشه. آلبیک که اومدم همین بهخاطر همینی که به بوااز میگه چی این اگر مجددی باشه در این خط آلبانی چقدر چون که من دواشت خدارن با آلبانی در گردن ما برخدم ما تا اینکه ما اه صحیر را ضعید بدونیم یمعلم ما رو بدونیم چقدر زحمت کششین اومدن امرشونون درگر تصحیح و تحت ایر بررسی راویان گذاشتن همه او به من خدمت علم کردن در کردن ماحقدارن اون هایی که سبب شدن عمل ما درست بشه اونهایی که در این كان لهم من الاجر مثل اجر من تبعه لا ينقص من اجورهم شیئا من دعا الى هدا هر کسی به بسیدی شرکت در هدایت در كان لهم من الاجر مثل اجر من تبعه لا ينقص من از اجر کسی با اون کار عمل میکنه کم بشه و کاسته بشه به اون شخصی که سبب هدایت اون شب بوده عجلش می رسه این اشخاصی که به نوع ای با نوشتن کتاب با خدمت به دین با رسسمدان فهمخوای خدمت کردن در رشد جامعه در فهم ماش ناخه ما همه اینها در گردن ما خداره خب الا بریم به وقت بعدی اون بحث احادیث صحیحین خاصناش بینی بحث احادیث صحیح در چه درجه ای قرار دارند احادیث صحیح اجماع در صحتش ابن صلاح چنین میگه بی اینکه احادیث صحیحین و اجماع کردن در صحتش ماعدا احادیث خیلی کمی که بعضی از صوفا مثلاً دارقطنی انتقادش کردن احادیث صحیحین اجماع در صحیحه ما ماعدا احادیث خیلی کمی که علما مثل دراغوتی و غیره انتقادش کردن و بعضی ها از موردی میان میگن که البانی اومده احادیث بخاری و مسلم رو زیر پا گذاشته و اجماع رو زیر پا گذاشته و احادیث رو تضعیف کرده آیا این حرف درسته خیر اولا اگر البانی احادیس را ضعیف دونسته نه به عنوان ضعف در اسناد و در رابیان به عنوان شزوز یا مخالفت هایی که هست دومت اگر البانی نقد کرده خودش پیش قدم نبوده که از سر خودش بیاد یک حدیث رو نقد بکنه بلکه احادیث رو نقد کرده که حفاظ همشون داره قدنی اومدن نقدش کردن بَس آی حالا سوال اینجا، بحث اجماع که به صلاح نقض آلبانی اجماع رو زیر پا گذاشته خیر. چون آلبانی احادیثی رو کرده کرد که علما ادم کردن مثل دارقطنی و غیره. اجماع هرچیه؟ صحت احادیث در غیر از اون احادیثی که بعد از فواس مثل دارقطنی نقضش کرده. حالا این اجماع شده. در صحت احادیث صحیحه حالا صحتش علمی یا صحتش علمی و عملی هر دو به هم حالا این اختلافی که هست در نزد متکلمین که برمیگرده هم به بحث احادیث احاديث احاديث در نزد اهل حدیث و در نز اهل سنت فایده علم عمل رو داره فایده علم قطعی رو داره ما چیزی که آلبانی ترشیح میده و همچین احمد شاید و همچین امین حضر دیگه عالم ها سنیه رو میبینیم کاری که ابو رو صحیح رو انجام داده کاری که مسلم انجام داده از نظر اوسیری ها که حالا بیشترشون شما فایده علم زنی رو داره علم زنی گمان احتمال در الان درست باشی احتمال داره, داره که درست نباشه برمیگرده به عقل عقل مقدمه بر نقص در یک حدیث کاری به راویانش نداری ما به مت برمیگردیم این مت اگر عقل قبولش بکنه نظر قبولش بکنه قابل قبوله اگر نه نه حالا بحث اخوادیز آخر خودش بحثش خیلی بارده. از نظر بعد از اشعاره و بعد از متکلمی طبعا ابن حجرم ترجیخش میده هرچنکه منظورش متکلمی نیست میگه حدیث صحیح طبعا از جمعه اخوادیز صحیح فایده علم نظری رو دارد نه علم خالد. حدیث متباطر فایده علم قطعی رو داره پس در نتیجه با باید احادیث احاد با متباطر فرقش باشه فرقش در چیه میگه؟ میگه در علم نظری علم نظری عادن و علم یک نظر غالب یک نظر متردد ما زنی که در قرآن داریم یک نظر غالب داریم زنی که به حق که و یک زنی که به معنای گمانه شکه تردده قول متکلمین که فایده علم نظری رو داره برد میگرده تصفیح حدیث به نظر و استدلال یعنی باید بر بگردید به خود حدیث به قرائنش به مفهوم علماء و فلان به نظر و هذه المسألة تبقى من الحديث حذر الحد يا نظر الله صحيح وكير حق وكير حق و أهل حديث كأحادث فايدة علم عمل رضر و عد در این باب فرعوان از جمع قرآن فرمودي قدوان فلول نفره من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين فلولا نفرة من كل فرقة أشخاص أظهر فرقين طائفة كيف يكشح سمت لقمشي ليتفقه في الدين أذي يكشح يكشح سمت لقمشي السنة مزيادة فليبلغ الشاهدة منكم الغائب كجاب وفتب دار عرفة فتح فليبلغ الشاهدة منكم شااهد یک شخص از کادر از الله از عملشم ما می بین معاد را میز سریم یک شخص معز یک شخصه از آن میده که وقت داخل شده روزتون رو بخورید یا نماززه مغتون رو بخورید بکنید معظن یک شخصه سر میشه روزمون درست بشه شخصی که مهر رو دیده سوم میشه که چی؟ مهر منو شروع بشه یا فاهم پیدا بکنه پس یک شخص خود رسول ما ازش خبر قبول کرده هم با قول خودش هم با فعل خودش هم با تقضیح خودش اکتبول ابي شخص یک شخص ابي شاید میخواد بره بر بگردی بر یاد بده بر نمیتیل فتاک برش منیدی نظرالله مده اند سمیعا مقال امره اند. نگفت اشخاصی گفت یک شب سمیع مخالت شنید وعاها و حفظها و عده اگر درست نبود پیامبر در برشه تقریر و تعیید ایشنی هر کنو می زندن خیل اگر یک شخص رواتش قابل قبول بود قابل نبود هیچوقت نمی گفت نمی گفت حفظها و عده اون چیزی که شنیده را عدا بکنه یک شخص عدای می بکنه می گفت بکنه بکنیم یک شخص دیگه هم باید تأییدش بکنه تا این مورد قبول واقع بشه حالا این مسائل در قبول وجود قبول احادیث الفاظ احاد در نزد اهل سنت لو روایت زیاده حالا بحث خاتمه بدم بین بی مفعث و اونم اینکه چرا متکلمین بحث گمان را آوردن و علم را از عمل جدا, جدا کردن مثل متکلمین وقتی گفتن فایده علم نظری رو داره و ما در عمل قبول می ولی علمی ازش استفاده نمی کنیم و احادیت احاد چرا اینشینی حرفی دادن حرفشون بخاطر اینه که اعتقاد را از احادیت عملی جدا بکنن از جمله حدیثی که در بخاری داریم در بحث استوا اون کنیزی که کسر خورده بود یا مرگ رسول الله فرمونده که اونو بیار به صاحبش وقتی که او برد سآل کرد این الله خداوند کجا؟ این رد بر کی؟ رده بر معتدل و اشعاره که الله بالای آسمون هاست این حدیث را معتدل و اشعاره قبول ندارن در استباعی خداوند در بحث اتخاذ خودش خواهد من در بحث اتخاذ به خاطر همین این حدیث را قبول نمی کنن فایده علم را نمی‌ندیش نمی‌برند مگر اینکه به اتفاقشون بخونند. خداوند صل علی محمد و آل او را برکت